بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المؤلف رحمه الله وأسكنه فسيح جناته باب لا يقول عبدي حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثني ابن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم عبدي أمتي كلكم عبد الله وكل نسائكم إماء الله واليق الغلام جارية وفتاة وفتاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نوديكم من باب بفتي من بخاري رحمه الله باب لا يقول عبدي نجد عبد من برد من صلوا فانجو حديث حديث برهير رضي الله عنه وغفر الله له ولأمه كم يجدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودا لا يقول أحدكم عبد اماتی نجید یک از شما نگوید برده من کنیز من كلكم الله همه شما بندگان الله و کل و کل نسائكم الله و همه زنانتون کنیزان الهی همه زنان شما کنیزان الهی ان ولی قل اگر خواستید بگید بگید غلامی جاریتی و فتای و فتاتی مثلا خود صحابی میگم غلامی بودم نزد رسول الله صلی الله جوانی بودم به یک جو جوانو جوان گفته میشه غلام از باب اکرام یعنی وجه اکرامی داره پس بگید غلام بگید جاریه جاریه که همون کنیزه ولی خب حالا اینجا وجه تسمیش در لغت عرب به زن آزاده هم جاریه گفته میشده مثلا دختر بچه به دختر بچه به پسر بچه غلام گفته میشده و به دختر بچه جاریه یعنی مثلا انگار اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که پس بگید ای پسر بچه هم. ای دختر بچم هم. یا همون دخترکم هم. پسرکم هم. از باب تصغیر ولی خب به معنی نوکر نمیاد به معنی گذار نمیاد بیشتر به این معنی میاد پسرکم یا دخترکم و فتا و فتاتی خسن اینا هم بیشتر اصل فتا جوانه بیشتر بیشترم پسرم دخترم فتایا فتا فتاتی که دخترم میشه از کوچک شروع میکنی به بزرگ یعنی اول دخترکم بعد دخترم پسرکم بعد پسرم اینا خسن اونایی که ترجمه میکنم باید کم دقت بکنن در ترجمه هاشون این نکات زریفی هست چون بعضی از اصطلاحات هست معادل سریح ما روش نداریم این هم همین کلمه غلام معادل سریحی نداریم روش غلام بر حسب سیاق فهمیده میشه که غلام منظور برده هست یا منظور خدمت گذاره والله اون لفظ نوکه که خیلی بیدبانه و بیحترامانه هست نباید استعمال بشه خوصا تو بحث ترجمه خدمت گزاره. کسی خدمتی برات انجام میده و کاری رو از باب خدمت و از باب گرفتن حقوقی پاداشی برات انجام میده. نبوی رحمه الله اینجا یک مسئله را شرح میده میگه که اینجا نفی اصل بردگی نشده یعنی مثلا اینجا حالا شما نگید فلانی بردمه چون اون برده تو نیست. نه نه اینجوری فهمی اشتباهه. میگه حقیقت بردگی منظور اینجا نفی شده یعنی بردگی در اسب برای الله بندگی در اسب برای الله بردگی با بندگی یعنی تو حقیقتا بنده اللهی برده اللهی باید مطیع و فرماندار او باشی چون برده و بنده هر دو تا معنای زیردستی را میدن کسی که برای کسی کار میکنه زیردستی یک کسی دیگه هست فرمان یک کسی دیگه را اطاعت میکنه میگه چون حقیقت ما انسان ها مطیع و فرمانبردار الهی باید باشیم از اینجا رسول الله صلی الله علیه و آله گفت پس شما از باب این که مغرور به خودتون نشید متکبر نشید و فکر نکنید که حالا مالک و صاحب اون برده اید چون مالک و صاحبش الله نگید برده من شما مالکش نیستید بلکه مالکش الله بگید دخترم دختر بچم، پسرم پسرمم الا اینکه نیاز باشه از باب تعریف مثلا که بگید که این برده ای من از باب این که ارث ازد مثلا یا ازباب این که یک حق و حقوق خاصی داره. جایی که ازباب بیان حالش باشه مشکلی نیست. اما این که از باب فروشی باشه که بگه حالا من ده تا برده دارم و این برده منه اون برده منه نه اینجا شهر جلو بتو رو گرفته و تو را من کرده. همین حرف را حافظ ابن حجر هم در فتح الباری میاره. چون حدیثش هم در بخاری هم مسلم این حدیثی که خوندیم هم در بخاری هم در صحیح مسلم نبي رحمه الله ميجفأرشد صلى الله عليه وسلم إلى ما يؤد المعنى مع السلامة من التعاضب. هم معنى رمي رأسونه. هم فتاة وفتاه. همون معناه برده وكنيز رمي رأسونه. ولكن در لفظ فتاة وفتاة تكبر غرور نيس. شو الإنسان بالدختار خوده شا ميجي دختارام؟ لأن لفظ الفتاة والغلام ليس دالا على محض الملك دلالات العبد. محض الملكيات رانة رمي رأسونه. دختارام دختار, دختار بتشاب. برخلاف یا مثلا همون دخترکم و بسرکم محز عبودیت را نمی فقط کثر استعمال الفتا في الحر و كذلك الغلام و الج... الجاریه استفاده فتا و همچنین فتا و غلام اینا برای غیر از بردگان بکار برده شده و اینها محل اشکال نیست و معنی اولی را میرسونه بخاطر همین بهتره که اونها رها بشه و از این الفاظ بکار برده بشه بله باب بعدی با با قال المؤلف رحمه الله باب هل يقول سيدي حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا حمد بن سلمة عن أيوب وحبيب وهشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي ولا يقولن المملوك ربي وربتي وليقول فتاي وفتاتي وسيدي وسيدتي کلکم مملوكون و رب الله عز و جل نمد دومین باب گفته ایمان بخاری رحمه الله باب بخل یقول سیدی اجازه داره برده بگه آقای من یا بانوی من اگر زن باشه مالکش صده پنجا و چارمین حدیث حدیث بیوری رضی الله عنه و الله له و له امه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن لا یقول لن احدكم عبدی و امتی یک از شما نگه برده بلا یقولن المملوک و برده هم نگه ربی و ربتی ربی رب به معنی پروردگار میاد هرچنک استعمال برای غیر پروردگار به معنای سرپرسته سرپرستم ولی چی میخواد مرد باشه چی میخواد زن باشه سرپرستم چون حقیقت سرپرستی ها و پرورش ها به دست اللهه او هست که ما رو میپرورونه با رزق و روزی و با اون انعام و فضل و نعمتش حقیقت سرپرستی ها از آن الله ولی اقول پس یک از شما بگه فتای و فتاعتی همون اصطلاحی که قبلا کار برده شد پسرم دخترکم یا دخترم و سیدی و سیدتی و آقای من و بانوی من کلک و همه شما چه مالکین شما چه بردگان شما همه تون مملکید همه در زیر تصرف و پروردگاری الله هستید او هست که شما را میپرورانه و و الله عز وجل رب فروردگار مطلق فروردگار عالمیان و فریدگارشون الله عز وجل هست الله که حق ریاست و مالکیت را بر ما داره اما اون کسی که بردگان زیر دست خودش داره حقیقت اون ریاسته و اون آقایی را گردن اون زیر دستان خودش نداره یک ملک خاصی، اندکی، محدودی مادامی که زنده هست فقط اون برده در مقابل اون مالک خودش داره همه ما مملوکیم همه ما ایم و الله مالک همه ما ها هست حالا این مسئله بازم دوباره خواهد اومد کلمه سید و کلمه رب کلمه رب اگر استعمالش مطلق باشه برای غیر الله درست نیست الرب یا حتی ربی الله اینجا که نهی شده ازش این چیزی که شیخالبانی رحم الله هم بهش اشاره میکنه اما اگر مقاید بیاد رب البيت بیت و رب تول بیت سرپرست خونه, خونه و سرپرست خانواده عنوان سرپرستی بیاد مقاید بشه یعنی به خونه و منزلی و جای و جایگاهی و مدیر شرکتی و مسئول شرکتی و رئیسی مشکلی نیست مقاید بنده ولی مطلقش برای الله جل و علا مطلقش برای الله کلمه سییدم خواهد اومد بازم در احادیث که امام بخاری رحمه الله به اونم اشاره خواهد کرد حدثنا مسدد قال حدثنا بشير بن الفضل قال حدثنا أبو مسلمة عن أبي نظرة عن مطرف قال قال أبي انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أنت سيدنا قال سيد الله قالوا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا قال فقال قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان صد پنجه و پنجمه این حدیث, حدیث مطرف رحمه الله که می پدرم چنین گفته که با گروهی رفتی من نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم با بنی عامر یعنی با اون قافله با اون جمع بنی عامر از اون صحابهی که از این قوم بودن از قوم بنی عامر می گید نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم فقالو اون وفد اون گروه اون مجموعه وقتی که رسیدن از باب خوش آمدگی به رسول الله صلی الله علیه و گفتن انت سیدنا رسول الله سفوران به زبان جواب نمیگه سیده هو الله سید مطلق ماذ رب مطلق مالک مطلق سید معنی مالکیت آقایی و مالکیت رو میرسونه اون مالک مطلق اون رئیس مطلق اون کسی که سیادت و ریاست به دست اوس یعنی مالکیت همه رو داره الله جل و علا سید الله سید الله بالاتر چون سید الله خلق الله نمیتونه سید باشه یعنی منع مطلق یعنی نباید به کسی بگیم سید یا میشی گفت به کسی سید بالا خود اصلاح سید که الان به کار برده میشه برای بنی مطلب و هر که بنی مطلب که الان فقط الان فقط به آل علی ابن نبی طالب رضی الله عنه فقط سید گفته میشه یعنی کسی نیست که الان بگم من سیدم از نوادگان ابو جهل مثلا چون اونها هم ساده بودن دیگه بزرگان قریش بودن که اونها هم سیادت داشتن برای خودشون بنی مطلب بن هاشم اینو همه عباس عموی رسول الله صلی الله علیه و سلام و از بزرگان. خب اون چیزی که مرسوم شده اینه که به اولاد فاطمه از علی بن ابی طالب حسن حسین ای ای و حسین و نوادگانشون سید گفته بشه. خب این رس شده یکی از هایی هست که بعدا اومده اضافه لبز لفظ سید به نوادگان فاطمه دختر رسول الله صلی الله علیه و فاطمه رضی الله عنها. حالا اینکه گفته بشه به شخص اشکال داره نداره و مسئله دیگه هست میشه به یک شخصی لفظ سید اطلاق کرد چون رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام گفت قولو بقولكم یعنی بگید میخوای مثلا از باب احترام تقدیر ولی که شرط و شروط داره برای خودش که خواهد گفت قالوا و لا فضل یعنی بهترین ما و قر ما از اون اصحاب فضیلت اون که از فضل دارن شما پر و اعظاما طولا و شما بیشترین و بزرگترین مکانت و جایگاه رو دارید طول یعنی جایگاه مقام والا مقام ترینید شما از میان والا مقام ها و اعظامون تولا یعنی بزرگترین مقام رو دارید خب اینجا این مدح و ها اضافه شد سید و افضلون و بعد اعظامون خب اینجا رسول الله صلی الله علیه وسلم نرحت میشه از این نوع مدح سرای تعریف تمجید حسین قزاف گویی در متوستهایش کردند این ورس تو درها منهی در شد خود رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه احثو فی وجوه المداحین الترهاش که واقعیتش رسول الله صلی الله علیه و سلم سید ماست سرور ماست فضل رسول الله صلی الله علیه و سلم از فضل همه کس بر ما بیشتره از خلق الله ولی که نباید این تعریف و تمجید و این ستایش سبب بشه که ما غلوف بکنیم سبب بشه که ما غلو بکنیم خاطر همی رسول صلی الله لا یستجریانکوم الشیطان قولو بقولكم بگید الله میخواید از کسی ستایشی بکنید اشکال نداره اون ستایش مادامی که محدود باشه مقتید باشه مثلا کلمه سید گفته بشه ولی که شیطان بر شما چیره نشه غلبه نکنه لا یسجریان نکنه الا یستغلبنکم فیتخذکم جریان یعنی شما دیگه سبب نشه که نماینده شیطان بشید جری شیطان بشید یعنی وکیل شیطان بشید نماینده شیطان بشید که سر اون طرف مقابل را با اون پنبه ببرید با اون مدح و ستایشتون با نرمی یا درش غروری بیافرینی صدب بشه که اون شخص مغرور متکبر بشه بگه آم محدم من, من کسی هستم چیزی هستم و یا اینکه با اون حرفها ازش چیزی بکشیم با تملق با اصلاحات امروز بیش میگن پاچخوری وزی ها بلدن اینقدر میرن پیش این تاجر و اون تاجر اینقدر تملق میکنن حالا تملق قلا یک طرفشه از صد دیگه کسی بهتر نیست تو همیشه به فکر ما بودی تو همیشه به فکر جامعه بودی تو هرچی داریم از هر صد داریم هرچی مسجد تو ساختی هرچی چی فلان دار میخواد پیمانکاری فلان مسجد دیگه هم تحویل خودش بده یعنی حقشو فهمیده یعنی داره حقشو داره به جام میاره این همهش کل این مقدمه چینی برای چی برای که خودش بشه پیمانکار اون تاجر اون تاجر هم میبینه بله واقعا نا اینه بله اینه داره از اون کاری که کردم داره از, از من داره تشکر میکنه داره به چشم میاره بقیه مردم که نهی در صورت که اون به فکر جیب خودشه میخواد سودی به جیب خودش بره این بدترین نوع تملقه بدترین نوع تمالق که در ازای اون سوء بهره برداری باشه ما بیاییم بهره برداری بکنیم به نفع خودمون برای کسب اون مال حرام با این الفاظ اون شخص را فریب بدیم که ازش مالی بگیره یا پول بکشی میگه به خاطر همین اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلام این هشدار رو دادن لا یسجری انکم الشیطانین لا یستغلب بر شما غلبه نشید شیطان بر شما غلبه میشه با این کارا شما میشید سخنگوی شیطان لا یسجری انک و این شما سخنگوی شیطان نشید چون یا رش به خودتون می رسسه یا ضررش به طرف مقابل یا خودتون مال حرام می خورید با اون مدح تو. یا طرف مقابل که در کبر و غرور و در عجب میفته، فکر میکنه برای خودش کسی یه کاریه. این کارا رو نکنید. اینجا یه کشاره هم هست به اینکه انسان شاید یک چیزی حرام نباشه به ذات خودش ولی از باب سد ذرائع برش حرام بشه. سید گفتند، گفتیم شخصی گفته بشه سید، آقا مشکلی نیست. آقا سرور، تاج سره رئیس، مدیر مشکلی نیست. مشکل کجاست؟ مشکل اونجایی که ما مرتکب حرام بشیم با اون کارمون ما بیاییم مالی را به ناحق از اون طرف بگیریم یا پستی مقامی بگیریم حالا لازم نیست که فقط مال باشه جای پست مقامه میاد پیش طرف به خاطری که پست مقامی می تو شرکتی تو اداره تو جایی میاد مدی حسرراه بکنه برای رسیدم یا برای حفظ اون جایگاهشمانمللوکش حرام. این ابزار نامشروع برای حفظ کردن و محافظت بر اون پست مقام برای شره بهبار سرش، یاد مدیحه سرایه می کنه. خب اینها ها حرام شد یعنی بر این کار من چندین امر حرامی به چندین امر حرامی منجر شد این مدیحه من اصل مدح مشکلی نیست تایش کسی در مقابل کاری که کرده ستوده بشه مشکلی نیست ولی این که اینکه این ستایش و این ستودنی ها سبب امر محرمی بشه حرامه هر فعلی که منجر به فعلی حرام بشه مقدمه اون فعل حرام حرامه ادرار کردن مباه حضورتون گرفته ولی که این ادرارتون چطور باشه که بدنتون نخوره این مهمه شخصی ادرار میکنه ایساده و مزنه اون یون ایسادی یه یعنی نکته رو پیروانش بپاشه حکم ایسادان برای ادرار کردن چیه با این نهفیک رو بدن بدنت بپاشه حرام جایی هست شخص نمیتونه بشونه تو جنگ ادرار بکنه ایساده حکم چیه؟ تو تقدره به ها درس مقدر میشه آیا حکم ضرورت داره حاجت نیازه و آخر یا کسی نمیتونه بشینه تو قدر به ها به اندازهش مشخص میشه آقا اینجا درس اینجا درس نیست ولی اصبر حرمتشه استثناء میشه جایی که انسان نمیتونه چرا در ایستاده حرام شده چون مزنه چیه پاشیدن اون ادرار به به لباس وقتی که اون ادرار به لباس پاشیده بشه اون نماز هم چی میشه باطل میشه چیزی که به حرامی بشه میشه حرام لازم نیست که شما دنبال نسل شرعی بگردید که آرسل هم گفته ایستاد ادرار بکنید و نکنید مهم چیه اون نمازه اگر اون ادرارت مقدمی باطل شدن نمازت شد اون ادرارت با اون نحو میشه حرام حالا میخواد هر جوی و هر طوری باش بله بابی بعدی خال المؤلف رحمه الله باب الرجل راعن في اهله حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي, عن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة فظن أن اشتهينا أهلينا فسألنا عمن تركنا في أهلينا فأخبرناه وكان رفيقا رحيما فقال ارجعوا الى اهلكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني اصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم نوى السبب من باب تيما رحمه الله باب الرجل راعن في أهله هار راعيها مسؤول اسم اسؤول دار خانوا حديث حديث مالك بن الحويرف رضي الله عنه ميقه وما دين مجموعه نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم و ما نحن متقارب همه هم جوان بودیم شما جوان هم سن و سال فاقمنا عنده 20 ليله بیس روز نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده برای تعلیم برای آموزش اومده نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم پیشینه و دینشو یاد بگیره این اهمیت علم و حرص بر یادگیریش انسان ازن چشم بزنه برای طلب علم و اینا این کارو کرده از هر بچه و زدن برای یادگیری علم علم از هر چیز والاتر از ذهن از بچه چون علمی که سبب در عبادتت با بصیرت هذه سبیلی ادعو إلى الله على بصیره وترهامي الم بوخاری باب داره در العلم قبل القول والعمل العلم قبل القول والعمل فعلم أنه لا اله الا الله اولین علم توحید خصوصا حقوق الله جل وعلا علم قبل از همه چیزه چون با علم که تو هدایت میشی بر پر چون با علم که تو سبب میشه که از حرام پرهیز بکنی و حسابت روز قیامت آرسوم بشه علم. علم نور هدایت فظنن ان اشتهین اهلینا اینجا هست که احساس که ما مشتاق خانواده من هستیم خوصا اینجا یک تو پرانتز میاد اونایی که متاهله نیاز جسمی نیاز حسی و برطرف شدن اون نیازی که الله گذاشته در تن و جانشون منده هست الله این حاجت رو نیاز گذاشته غذاش براش گروستگی براش غذا گذاشته چشنگی براش آب گذاشته شهوت براش همبسری گذاشته خب میگه این چیز را رسول هست در ما دید دید که ما الان مشتاق همسران ما هستیم خانواده ما هستیم خب این یک مسئله را میرسونه و اونم درک کردن درک طرف مقابل انسان حس بکنه که این الان این جوون الان نیازمند خانوادهشه کجا میتونیم و چطور میتونیم درک بکنیم از خیلی چیزا میشه لمس کرد جوونی که عصبیه پرخاش میکنه دختر هم دختر که به سن بلوغ میرسه پرخوشگر میشه یا عادت کی میشه عادت ما یا میشه جوون هم همینطور سن بلوغی میرسه چرا چون هورمون تستوسترون تو خونت بالا میزنه خونت جوش میزنه باید تخلیه بشی فطرت ذاته همون تو که گفتم گرسنگی اسید معده شما میشه احساس گرسنگی میکنی میخوای یه چیزی غذا براتون مده تا هضم بشه اینم هم همونه خیلی چیزا هست که ما نیاز به درک داریم در طرف مقابل مثلا شما دقت کردید حتی از ذات طبی هم ثابت شده در شرط توصیه شده به روزه 13 و 14 و 15 ایام بیو چرا چون خون جوش میزنه شهوت انسانم بیشتر میشه از طبی هم ثابت شده رسول الله علیه توصیه به کرده از توصیه و سفارشات رسول الله علیه این فطرت سرشته و زشتی توش نیست طبیعت همونطور که انسان نیمیشه میشه همونطور انسان شهوتی میشه راهکار و راهچاره هم داره اینا باید بر بگردن به خانواده‌هاشون میگه رسول الله صلی الله علیه و آله اینو در ما درک کردن فسألنا من تركنا في اهلینا فاخبرناهی یک سوال از ما پرسیدن لا کسی هست پیش خانواده هاتون نیست چرا پرسیدن میگه از بهش بازگو کردی فاخبرناه میگه با کنا رفیقا رحیما اینجا مهمه رسول الله صلی الله علیه و خیلی رفیق بود یعنی مهربان بود و رحیم بود بحث همدردی هست بحث ترحم بحث رفق لطفه میگه اینها در رسول الله صلی الله علیه و این صفات نیک بود خصوصا با یارانش با اصحابش چه موقعی قضیه پیش میاد وقتی که شخص باهاشون بشینه بشون رفت آمد داشته باشه نشست و برخاست داشته باشه تا درک بکنه اینی که از اینجا برداشت میکنن که نباید راعی از رأیش به دور باشه باید نشست و برخواست داشته باشه باید بره الان میاد بحثاشون بحثاش تو بازار رفت آمد داشته باشه و مردم بشینه خوصا و کسی که حاکمه از درد مردم با خبر باشه نه بی خبر اینجا هست رسول الله عالمه اینجا رسول الله حساسا حاکمه اینجا رسول الله حساسا رفیقه صاحبه همدرده همرنجه میرنجه به رنجت درد میکشه با دردت این حسن تعامله با همین در این 20 روز تعامل در این 20 روز نشست و برخاست چی برداشت کردن از رسول الله صلی الله علیه و آله با اون تعاملش رفیق رحیم این صفات نیکی که در رسول الله صلی الله علیه و بود بعد اونجا شوق ما به خانواده‌مون دید فرمود در رسول الله صلی الله علیه و آله ارجعوا الی بر برگردید به خانواده‌هاتون فعلموهم و مروهم یاد بشه بدید چیزی که یاد گرفتید و مروهم یعنی امرش بکنید بهشون بکنید در ازای اون شرع دين كي عزته خاصة وصلوا كما رأيتمين وصلوا نماز بخونت چنانچه ديد من نماز بخونة نسل الله صلى الله عليه وسلم فاربودا ارجعوا إلى أهلكم فعلموهم ومروهم بنها یاد بديد عمر شنام بخونت ونمازام بخونت خمتك من نماز خونة وميخونة انتو سي اللهم دار القرآن يا ايها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهلكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة يا ايها الذين آمنوا قو أنفسكم أبل خود و بعد خانوادتون و اهلیکم نارا وقایه و یعنی بقای و پوششی بین خودتون آتش جهنم قرار بدید از تقوا و پریزگاری بر حذر باشید و بر حذر بشمرید خانواده هاتون را از جهنم وظیفت هست وظیفه که خانوادت یاد بگیری که این غیبت حرام این تهمت حرام این نمامی خبرچینی این دوزی این نمیدونم بتجاوی هر چیزی تو مسئولیشی تو قوامشی حجاب اون دخترت، حجاب اون زنت، اون و وزیفه توست که برنها سخت بگیری وگرنه تو مسئولی بر روز قیامت، سوال میشی، تو مسئولی، کلو را تو مسئولی پس انسان در مقابل اهل خودش، خانواده خودش مسئوله بر تعلیمشون، بر طاعت و عبادتشون، بر نمازشون صلو که ما رأيتمونی و صلی نماز بخونید که من میبینید نماز میخونم بچه از اسف سالگی وظیفته که نماز یادش بدید از سوره فاتحه از تشهد خوندن و احکام و آداب نماز وظیفته کوتاهی بکنی و میشی میشه روز قیامت چون کوتاهی کردی در اون مسئولیتی که بردوشت گذاشته شده فید حضرت الصلاه احدو احدکم اگر وقت نماز فرا رسید یکیتون اذان بگه نه کنین این بس اذان گفتن اینجا در این حدیث دو طور مطلق اومده انسان چه در بادیه باشه در صحرا باشه در روستا باشه در شهر باشه در مسافرت باشه سنت در حق شخص که اذان بگه بر هر نماز فرضی الا این که نماز مسافرت جمعه یک اذان داده میشه اینجا هم توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلام بر اذان گفتن یه طرف خب اذان کی گفته میشه وقتی که ما میخوام نماز جماعت بخونیم هر که نماز جماعت هم نباشه تکی بخوام بخونیم مثل اون شخصی که رسوا مضحک میکنه اون چوپانی که با گله و گوسفندش رفته بیرون بر بعد ندایی میزنه صدای اذان رسول الله صلی الله علیه و میشنوه خب شخص مکلف وقتی که تنهاست میخواد نماز رو برپا بداره برای خودش هم اگر نماز فرض میخواد بخونه اذان از اذان گفتن مقدمه ای هست برای نماز فرض و علی خصوص نماز جماعت درسته علی خصوص چون گفتین فردم برای نماز فرضش اذان میگه مشروع بعضا گفتن واجبه حالا بحث فقیر رو اینجا نداریم ما نماز جماعت فرض أعزب لأحاديثك دلغات بفارزية تشدري فالمدير رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في ركب ولا بدو لا تقام فيهم الصلوات إلا وقد السحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغلم القاسي وكما قال عليه الصلاة والسلام سنفر نسا في ركب أو بدو تار بودي بوشا سحري بوشا سنفر شدر حول السفر بوشا شدر شهري بوشا هرجو بوشا سنفره لا تقاموا فيهم الصلاوات نماذج جماعات بينهم بارباناشة وعظام قفت ناشة خصوصا انجا تتأكيد شده بارعزان. إلا فعليكم الجماعة بس اغاث سنة فريد نماذا جماعات بخونين و اگر انكارونا شيطان الشيطان برشما تشير مشه ما من ثلاثة تفيرات بمولابات و لا تقاموا فيهم الصلاوات فعليكم الجماعة إنما يأكلوا الذئب من الغنم القاسية و كما قال عليه السلام فعليكم الجماعات بخونين و بدون که گرگ از گوسفند از گله جدا شده میخوره گرگ از اون گوسفندی میخوره که از گله جدا شده از گله جدا نشید با جمع و جماعت باشید پس اینجا توصیه رسول الله صلی الله علیه و که نماز را با جماعت بخونن و برای برپایه جماعت از آن بگن فاذا حضره الصلاه فليؤذن لكم احدكم وليقمكم اكبركم و کسی که بزرگتر از سن و سال چون میگه ما همه جوان بودیم هم سن و سال بودیم اون کسی که از لحاظ سنی بزرگتر پیش نماز بشه چون اینها هم سن سال بودن از لحاظ حفظ و حافظه و دین و دینداری و اینا ظاهرا اون چیزی که برداشت میشه متقارب بودن نزدیک به هم بودن رسول الله صلی الله علیه و سلم اولویت را در امامت به بزرگتر داده اولاتر اینجا در این جمعی که همه متقاربن هم سن و سالن و همه از لحاظ علمی با هم دیگه نزدیک و از لحاظ حفظ چون با هم اومدن نظر اساسا و, و حفظ کردن از اون حدیث و از اون آیات قران چون متقارب بودن اینجا هست که اولویت بعد از قراءت و حفظ قرآن و علم اولویت در چیه؟ اولویت در سن و ساله اون کسی که بزرگتره پیشوا بشه پیشقدم بشه و امامت را به عهده بگیره و این مسئله آدابه یعنی مهم شرع بهش تأکیدم داره مثلا رسول الله صلی علیه و وسلم در بحث امامت نماز در بحث صفحه اولی که پشت سر امامن میگه لی اولو العلم و نوها اون کسانی که پشت سر من اصحاب علم باشن اونهایی که سن سالی ازشون گذشته یعنی بچه ها و نونه حالان رو گوشه و کنار صفحاق قرار بدید نه پشت سر امام پشت سر امام کی باید باشه اون بزرگ سالان و اون کسانی که سنی ازشون رفته و اونهایی که علمی دارن حالا گفتم شرایط و انسان می که کجا بچه ها باید صفحه دوم بی سن، سن؟ مساجد که صفا اولش الله به زور پر میشه الله در بحث از آن گفتنم عالما یک اشاره اینجا میکنن در بحث فلیو اذ لکم و کم چی کسی از آن بده؟ حالا در امامت اومد که اگر متقارب بودن کسی که پیشوا و امام میشه کیه؟ از اون کسی که سنی از سن سالی ازش گذشته در بحث از آن چی؟ کی از آن بگه؟ همه میخوان از آن بگه در بحث از آن مراعات صدا میشه چنانچه در حدیث بلال داریم که میگه وَلَيُنَا دِ بِلَالٌ فَإِنَّهُ أَنْدَ سَوْتَنِ صداش جهوری تره، رساترش صداش شیواتره، اون کسی که صداش بلندتر جهوری تره، اون کس ازام بده اینها ها های شرع در این مسئولی که در این حدیث بهش اشاره شده سبحانکرنا بحمدک، سبحانکرنا بحمدک، سبحانکرنا بحمدک، صلی محمد و علا محمد